یونان قدیم معتقد بود که یونان قدیم معتقد بود که زمین مرکز عالم هست سیارها ستارها معنادی این پنتها در آسمان کوبیده شدهان مثل اینها آبیزانه و کائنات دور زمین می‌چرخند. تا اینکه ابو در زهرقالی یک مفسرین اسلام ثابت کرد که نه علم یونان قدیم غلط هست علم این است که خورشید هم در شناور هست زمین هم مرکز می‌دونیم مرکز, مرکز این کائنات تحت زمین اول آسمان اول زمین نیست بلکه خورشید است منظومه شمسی و اینها دور خورشید می‌چرخن و استدلال کجاست آیه قرآن کلون فی فلاتی اسبحون همه اینها در این فضا شناورن الله میگه کلون فی فلاتی اسبحون همه در فضا شناورن اینجا فلک یعنی مدار اینها در مدارها حرکت میکنن. این است که ابوعصاق زهرقالی همین چیزو ثابت کرده بود که علت شب روز آمدن حرکت خورش زمین دور خودشه و حرکت زمین هست از مغرب به مشرق میره اینو شما نمیدونستید الله بدونی حرکت زمین از مغرب اینجوری میچرخه اینجوری نمیچرخه از مغرب به مشرق هست حرکت اولش علت ایجاد فصلها هم حرکت زمین دور خورشید است که چهار فصل را می آورد و وقتی که اینها را اثبات رسان هم کبر ادعا کرد همین ادعاها را کرد چهار اصده اون تصویر کرد و علم یونان قدیم را به نام خودش مهر افتال زد گفت من اینها را کشت کرده هم تا اینکه دوباره کوبر اعتراف کرد که من نبودم. آن چیزی که من دارم میگن انها رو از کتابهای های مسلمان مسلمانها دوزیدیم مسلمان بودن که کشف کردن که زمین دور خورشید میچرخه. و فصلها علت فصلها حرکت زمین دور خورشید. آمدن سالها حرکت زمین دور خورشید. حالا اینکه اللہ را بول عالیین داخل قرآن میفرماند که کل آلا جهتی و شمس تجریل مستقیم رن لها خورشید هم داره حرکت میکنه خورشید هم دارای حرکت هست خورشید یه حرکت محوری داره دور خودش میچرخه و یه حرکتی داره خورشید همراه با منظومه شمسی در یک کهکشان تا کهکشانی که خورشید دارد داره در یک کهکشان خودش با کل منظومه شمسی با صورت نور یعنی سین سر هزار کیلومتر در ثانیه داره حرکت میکنه به طرف چی؟ به طرف ساره نصر و الواقع و اگر میگه کل منظومه شمسی کل منظومه شمسی خورشید با سیاره هی نوهگانه الان به ده ساره سیدیان رو بیشتر کشف کردن با این منظومه شمسی در این کهکشان داره حرکت میکنن کجا داره میرا به طرف ساره نصر و الواقع اگر با سرعت نور حرکت بکنم، یعنی در یک ثانیه 500 هزار کیلومتره، این ها در سال نوری، سی سال نوری به اون ستاره رسن به شرطیک اون ستاره اونجای استادی باشه، در حالی الله میگه کل نور فلکی یا سپاهور همیشه 30 سال نوری با این ماشین حساب نمیشه. چون هر ثانیه 500 هزار کیلومتره. اگر ما با بکنیم، 30 سال نوری باهمی حرکت بریم 30 سال اونجا میرسید حالا خیلی بعید از حالا اگر اونی صادق باشه یعنی یک کحکشان هست این است که واس بنا نه و ان موسی اون ببینید چی فضاای گستردی اله رب العالمین خالق کردی بعد از اون چیز دیگه هم دیگه شما نمیدونید زمین که گرده هست آسمان هم گرده آسمان زمین در زمین رو کلا در داخلش گرفته آسمان هم گرده و کرسی هو و سماواتی و الارض در بر گرفتی و که زمین با کل منظوم شمسی با کل کهکشانها با این آسمان اول در مقابل آسمان دوم دو مانند یک دانه ارزون هست یا عدس که در یه بیابای اون انداخته باشه آسمان دوم دو هم به همین صورت تابرسی به ارش همین ها در مقابل همدیگه دیگه مانند دانه ارزون قرار میگیرن خیلی ریزان در مقابل طبقه بعدی و طبقات بعدی که برن این است که بالا زیر عرش هم بهش زیر عرش الله رب العالمین بسیار بزرگ است الله می که عرض و سماوات و الارض